سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری دلبر بگداخ جانم از آتش مهر روخ جانانه بسوخت سوز دل بین که زبست آتش اشکم دل شمب دوش فرمانز سر مهر و پروانه به سُو آشنایی نه غریب است که دل سوز من است چون من از خیش بر دل بیگانه به سُو خرقه زهد مرا آب خرابات به خانه اقل مرا آتش میخانه به سُو چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست همچل لاله جگرم بیمه و خمخانه بسود ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسود ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمیم که نخفتیم شب و شم به افسانه بسود